فصل دهم ده زن ناشنناه سکوت کرد آرنج چپش را روی میز گذاشته و با دستش پیشانیاش را نگه داشته بود چشمهایش را بسته بود و سرش را تکان میداد شاید منظره آخرین ملاقات را از نظر می گذارند. خیلی میل داشتم بدانم که چرا جرأت نکرد برای آخرین بار او را ملاقات کند این زن دیگر در نظر من قابل احترام و ترحم بود. عجیب این است که فداکاری خودش را به حساب نمی‌آورد. گویی شرم داشت از اینکه این, این گذشته به این بزرگی را در زندگی به خاطر استاد کرده است. من به چشم های پرده نقاشی نگاه می کردم. هیچ رمزی در چشم های زنی که در برابر من نشسته بود وجود نداشت. استاد او را نشناخته بود. برای اینکه او را به حرف وادارم گفتم نخشه شما عملی شد. چون یادم میآید که در سالهای آخر دوره دیکتاتوری یکی از رؤسای شهربانی اسمش رو یادم نیست. حتما همین سرتیب آرام بوده است. از ایران فرار کرد و هرگز برنگشت. در آن موقع داستان میان مردم رواش داشت. و حتی شنیدم که مطبوعات اروپا حکایاتی از قول اون نقب کردند. جوابی نداد. حرف های مرا میشنید اما در خطوط صورتش اکثر عملی بروز نمیکرد. مجبور شدم ازش سوال کنم. بله، معلوم شد که زن سرتیب آرام شدید و البته وقتی خبر مرگ استاد را شنیدید قولی که داده بودید پس گرفتید و باز به ایران برگشتید. اجازه بفرمایید یک سالال دیگر از شما بکنم. الان گفتید که یک بار دیگر او را دیدید ولی جئرت نکردید با او صحبت کنید. دلم میخواست با چند کلمه در این باره هم توضیح میدادید زن ناشناس اشک میریخت آقای نازم این بزرگترین سر زندگی من بود هیچکس از آن خبر نداشت برای اینکه درباره کارهای دیگر من بالاخره کسانی بودند که کمابیش اطلاعاتی داشتند حتی از روابط سیاسی من با او بالاخره همانطوری که میدانید پلیس اطلاع داشت اما هیچ هیچکس جز آرام نمیدانست که من او را از زندان نجات دادم تمام زندگی خود را فدا کردم به امید اینکه او را نجات دادم در صورتی که گریه به او فرصت نمیداد اشک از چشمهایش میریخت و حقهق حق کنان صحبت میکرد در صورتی که اگر کمی جرأت داشتم کمی بیشتر گذشت میکردم اگر کمی او به من بیشتر میدان میداد و در آن روزهای مبادا که احتیاج به کمک من داشت مرا نزد خود میپذیرفت و مرا بیشتر تشجیمی کرد او را از دست نمیدادم از او دست بر نمیداشتم. به تبعید همراهش میرفتم با پول، با رشوه، با نفوزی که خودم داشتم با روابطی که خانواده من با زمامداران وقت داشتند شاید پس از یکی دو سال او را از تبعید برمیگرداندم و همانجا وسایل زندگیاش و کارش را فراهم میکردم و او را به سود زندگی میرو بودم حالا میفهمید که چرا نمیخواستم خودم را معرفی کنم؟ نمیخواستم حتی به شما هم که از تاریک ترین زوایای روح من با خبر شدید بشناسانم و بگویم که من زن سابق رئیس شهربانی بودم همان رئیس شهربانی که استاد ماکان نقاش را دستگیر کرد و او را به تبعید فرستاد من دوست خود را، معشوق خود را، کسی را که تنها انسانی بود که من میتوانستم با او زندگی کنم، در سخترین دقایق زندگیش تنها گذاشتم. و با دشمنش، با خونین ترین دشمن آرزوها و امیدواریهایش زناشویی کرد. این را او هم می‌دانست. زیرا یکی دو هفته بعد مهربانو نامزد و خدا داد که پزشک کودکان شده بود به ایران برگشت تا درباره باره اوزا و احوالی که در نتیجه دستگیری استاد پیش آمده بود تحقیقات کند و زمینه را برای مسافرت خداداد به ایران فراهم سازد در همان دو سه ای که پس از قرار و مدار با سرتیب در ایران ماندم مهربانو روزی به ملاقات من آمد اما من به او فرصت ندادم که درباره کارهای جاری که از آن اطلاع داشتم صحبت کند. با همه خنده های مصنوعی و روی گشاده ساختگی به او گفتم که عقد کرده هستم و تا چند روز دیگر به پاریس برخواهم گشت. البته استاد هم از آن اطلاع حاصل کرده و به همین جهت تابلو را ساخته است. کی تقصیر داشت؟ آیا من گناکار بودم؟ یا او که مرا به این روز سیاه نشانده است وقتی به اتاق رئیس شهربانی رفتم خیلی خوشحال بودم همین که وارد شدم آجودان خود را صدا زد و گفت کسی اینجا نیاید بفرستید مکان نقاش را هم از زندان بخواهید باشد تا صدایش کنم وقتی آجودانش رفت از پشت میزش بلند شد و پیش من آمد دست مرا گرفت و گفت: « خواهش شما را انجام دادم همین امروز او را میفرستم به کلات پرسیدم کار دشواری بود. گفت کار دشوار ما از امروز به بعد است تا دو ماه دیگر آماده مسافرت خواهم بود. شما چه می گفتم تتسکره مرا بگیرید. من همین روزها میروم به پاریس. گفت مراسم عقد را کجا برگزار می گفتم مراسم مقت را همینجا بیس هر و صدا برپا می کنیم. مادرم هم حضور داشته باشد بد نیست. گفت بسیار خوب. پرسیدم استاد می آید حالا اینجا؟ گفت میخواهید ببینیدش؟ گفتم نه. من با او کاری ندارم. گفت اگر میخواهید میتوانید با او تنها صحبت کنید. میگویم اتاق انتظار را خلوت کنند. بنشینید و هر چه می خواهید باز هم توطعه بچینید. خود را آرام نشان می دادم خنده های ساختگی و چشم درخشان من او را فریب داده بود و واقعا تصور می کرد که هیچ مایل به ملاقات او نیستم بلند بلند خندیدم و گفتم نه سرتیب. من دیگر زن شما هستم و هیچ میل ندارم با مرد نامحرمی تنها صحبت کنم شاید لازم باشد با او چند کلمه صحبت کنی و به او بگویی که تو نجاتش دادی گفتم ابدن، اگر بفهمد که به کمک شما در رهایی او دستی داشتم، پار دیگر خود را به زندان خواهد انداخت. پرسید میخوایید که من به او اشارهی بکنم؟ گفتم هرگز چنین کاری نکنید. خواهش میکنم او را نرنجانید. دلداریش بدهید. بگویید که مورد اف ملوکانه واقع شده و علتش همین است که هنرمند بزرگی است. و حیف است که در تهران بماند، و به کارهایی که شایسته او نیست بپردازد. از این جهت مدتی دور از تهران خواهد ماند و همین که آبها از آسیا آب پا افتاد میتواند به خانهاش برگردد و به کارش برسد. آیا نوکرش هم همراه او خواهد رفت؟ نه نوکرش هم حبس است. مگر او را مرخص نمی کنید؟ هر دوشان را مرخص میکنم. اما نوکرش را همراهش نمیفرستم. آجودان وارد اتاق شد و گفت قربان زندانی حاضر است. اتاق انتظار را خلوت کنید. میخواهم آنجا با او صحبت کنم. سرتیب از اتاق خارج شد. صدای او را میشنیدم. آیا میتوانستم بروم و به او بگویم که محض نجات او به سر در کاری که ممکن بود دست زدم و خود را در آغوش مرد خود خواهی که جز تن خود و احتیاجات آن هیچ چیز مقدسی در زندگی نداشت انداختم این جرأت در من نبود و من نمیخواستم به او بگویم که چگونه چنین تصمیمی گرفتم یک به ساعت رئیس شهربانی در اتاق مجاور با او صحبت میکرد مثل اینکه مرا دستگیر کردم و به جای او به زندان اندازم قلبم به شدتی می‌تپید که از حرکت سینه‌هایم شرمم می‌آمد. میتوانستم گفتگوی را بشنوم اما نمیخواستم رئیس شهربانی ملایم و معدب صحبت میکرد. استاد فقط گوش میداد و به ندرت جوابهای مقدم میداد. یک بار بلند شدم تا نزدیک در رفتم. دستگیره را گرفتم که شاید او را از لای درز در تماشا کنم. صدای تلفن رئیس شهربانی مرا ترساند. برگشتم و جای خودم نشستم. سرتی با قیافی آرام و خندام به اتاق خودش برگشت. توشیه تلفن را برداشت و جواب کوتاهی داد. آن وقت آمد به طرف من. دست مرا گرفت و مرا به طرف پنجره برد و گفت. بیایید تماشا کنید. با گردن کشیده، در لباس آراسته و اتو خورده، به اتفاق یک صاحب منصب و دو مأمور سیاسی از پله های پایین میرفت. پاسبان ها به او سلام میدادند و راه باز میکردند. استاد آرام سر میداد وقتی از پله ها پایین رفت کمی مکث کرد نگاهی به آسمان انداخت سینه‌اش را فراخ کرد گویی دارد نفس عمیقی می کشد این آخرین باری بود که او را دیدم و همین منظره در خاطر من نقش بسته است آقای نازم خواهش مندم کوتاه کنید دیگر سوالی نکنید من دیگر چیزی ندارم به شما بگویم تازه هم هیچ چیز به شما نگفتم آنچه درون مرا میکاود و میخورد هنوز هم گفته نشده اگر من میتوانستم آنچه را که درون مرا میسوزاند بیان کنم آن وقت شاعر میشدم نویسنده نقاش و هنرمند بودم و حال نیستم شما زندگی استاد را از من میخواستید برایتان نکایت کردم از زنهای مانند من که زندگیشان فدای هوا و هوس مردان این لجنزار شده فراوان هستند از شما ممنونم که آنقدر حوصله بهخش دادید و داستانشون را که مربوط به کار شما و علاقه شما به زندگی استاد نبود شنیدید تابلوتان را ببرید دیگر من به این تابلو هیچ علاقه ای ندارم استاد شما اشتباه کرده است. این چشما مال من نیست.